در روزنامه خبری در مورد جاده ابریشم نوشته شده است ایران قصد دارد بخشهایی از جاده ابریشم را در مرزهای جغرافیایی خود بازسازی کند من هم چیزهایی شنیدم مسیر جاده ابریشم در ایران بازسازی می شود. این جاده چین را به ایران وصل می کرده است درست است؟ در واقع این جاده از چین شروع می شده و تا شرق اروپا یعنی شهر روم امتداد میافته است. می این جاده چقدر قدمت دارد؟ قدمت آن مربوط به قرنها قبل از میلاد است. فکر نمی کردم این جاده اینقدر قدمت داشته باشد. ارتباط ملل مختلف، قدیمی تر از آن است که ما فکر می کردیم بله در دوران باستان چین ایران ترکیه روم و مصر با هم ارتباطات تجاری داشتند درست می گوی. در این روزنامه هم به این مسئله اشاره شده است مردم ایران ابریشم چینی ها را میخریدند و کالاهای خود را به آنان می فروختند میدانی نام این جاده قبلا جاده ابریشم نبوده است؟ نه در مورد نام آن چیزی نشنیدم در اینجا نوشته که یک جغرافیدان آلمانی حدود 150 سال پیش این نام را برای این جاده انتخاب کرده است